پیرمرد به آسمان نگری است و پرنده را دید که باز در هوا چرخ میزد بلند گفت باز ماهی دیده اثری از ماهی پرندهای که سطح آب را بشکافد و ماهی تعمهای که آب را به اطراف بپاشد نبود اما همچنان که پیرمرد نگاه میکرد دید که ماهی تن کوچکی به هوا پرید چرخید و با سر به درون آب افتاد. ماهیتون زیر نور خورشید چون نقره می درخشید و تا در آب افتاد یکی دیگر و یکی دیگر بیرون پریدند. از هر سو می و آب را کفالود می و با خیزهای بلند سر در پی تعمه نهاده بودند و توعمه را محاصره کرده بودند و با خود می بردند. اگه زیاد تون نرن، میتونم بزنم وسطشون. و گله ماهی ها را دید که آب را سفید کرده بودند و پرنده را دید که بر فراز ماهی طعمه که با جنجال ماهی های تون به سطح آب رانده شده بود، فرود آمد. پیرمرد مرد گفت، این پرنده خوب کمکیه. و همون دم نخی که عقب قایق بود زیر پایش، همانجا که گره خورده بود کشیده شد و پیرمرد پاروها را انداخت و همانطور که نخ را محکم گرفته بود و میکشید وزن کشش لرزان ماهی تون کوچکی را حس کرد. هرچه بیشتر نخ را میکشید لرزش بیشتر میشد و پیش از آنکه ماهی را روی پهلویش بگرداند و به قایق بکشد توانست پشت آبیش را در آب و پهلوهای زرینش را به وقت بالا آمدن ببیند. ماهی ته قایق زیر آفتاب چون گلولی فشرده بود و همچنان که با ضربه های لرزان و دم صاف و پر حرکتش جسهش را بر تختهای کف قایق می چشمان درشت کودنش خیره مانده بود. پیرمرد از سر رحم اطوفت محکم بر سرش کوبید و بدنش را که هنوز لرزن بود با پا به زیر سایه انتهای قایق انداخت پیرمرد با خود گفت یالب یا کره من نیم کلووی بشه عالی ازش در میاد. اولین باری را که در تنهایی با خود حرف زده بود به یاد نداشت قدیم ترها در تنهایی روزها و گاهی نیز در خلوت شبها که قایق شکار لاک پشت یا کشتی ماهیگیری را میراند با خود آواز میخواند با خود حرف زدن را شاید از وقتی که پسرک رفته بود آغاز کرده بود اما درست یادش نبود وقتی با پسرک بود فقط به حکم ضرورت حرف میزدند در عوض شبنگام یا در هوای بد و طوفانی با هم درد دل میکردند سکوت کردن در دریا مگر به حکم ضرورت رسمی پسندیده بود و پیرمرد آن را رعایت می کرد و به آن احترام می گذشت. اما حالا کسی نزدش نبود تا از حرف زدنش ناراحت شود و بیشتر افکارش را بلند بر زبان می آورد. بلند گفت، اگه مردم بشنوند که با خودم حرف روزه نه خیال می کنند اما برام مهم نیست. چون خودم میدونم که دیوونه نیستم. پولدار تراتوی قایقشون رادیو دارن که براشون حرف بزنه و از اخبار به بگه. فکر کرد. حالا وقتی فکر کردم به بیسبال نیست. حالا فقط وقتی فکر کردم به یه چیزه. هم. اون چیزی که واسهش به دنیا اومدم و باز فکر کرد. باید دوروبر این البکورای ماهیه درشت بپلکه. من فقط یه آل با کر که موقع غذا خوردن از گلش دور افتاده بود گرفتم ولی اونا دارن خیلی تند و خیلی دور حرکت میکنن امروز هرچی روی دریا دیده میشه داره به سرعت رو به سمت شمال شرقی میره مم. حتما خاصیت این وقت روزه یو نکنه علامتی از حواست که من نمیشناسم دیگر نمی توانست سبزی ساحل را ببیند و جز قله تپه های نیلگون که از دور چنان سفید می زد که گویی از برف پوشیده شده است و جز ابرها که بر فرازشان چون قله های برفی سر به فلک کشیده بودند چیزی پیدا نبود. دریا سخت تیره و قلیز بود و نور خورشید در آب منشور می ساخت. و زرات بیشمار حیوانات ریز دریایی اکنون در نور خورشید محو شده بودند و پیرمرد تنها منشورهای بزرگ را در عمق آبی آب می دید که با نخ ماهیگیریش مستقیم و در امق 1500 متری جا داشتند. اکنون همه ماهیهای تون پایین رفته بودند. ماهیگیران به همه ماهیهای این تیره تن می گفتند. و تنها موقع فروش یا موقع عوض کردن تعمه نام اصلیشان را میگفتند. خورشید اکنون سوزان بود و پیرمرد سوزشش را بر پشت گردنش حس می کرد و همچنان که پارو میزد قطرات عرق را که از پشتش می چکید حس می کرد. فکر کرد الان میتونستم قایق و بسپورم به همان دریا و به خوابم یه گله نخت و رنگشت های بپیچم که به موقع بیدارم کنه. اما امروز روز هشت و پنجم و باید چشه گوشم خوب باز باشه. داشت به نخوایش نگاه می کرد که یکی از چوبهای سبز رنگ قلاب را دید که به شدت در آب فرو رفت. آب؟ و پاروهایش را چنان آرام بر زمین گذاشت که قایق هیچ تکان نخورد و دستش را به سوی نخت راست کرد و آن را به نرمی با شست و سبابه دست راستش گرفت. هیچ وزن و کششی حس کرد و نخ را سبک و آرام گرفته بود. بار دیگر گلاب فرو رفت و این بار کششی مشکوک بود که نه محکم بود و رسنگین و پیرمرد معنی را رو خوب میدانست. صد هشتاد متص پایینتر نیز ماهی داشت، ساردین های روی سوزن و میله قلاب را که پیرمرد با دست خودش ساخته بود، همانجا که سوزن از سر ماهی تن کوچکی گذشته بود، می‌خورد. پیرمرد نخ را به زرافت گرفته بود و با دست چپ نرم نرم از گرد چوب آزاد می‌کرد. حالا می توانست نخ را از بین انگشتانش بلغزاند بیان که ماهی تکانی حس کند. فکر کرد این همه دور. وسط دریا و تو این ماه سال باید ماهی خیلی بزرگی باشه. بخارشون ماهی. بخورشون دورو به خدا بخارشون. ببین چه تر و تازه تو که تو امقه 180 متری اون آبای سرد ای توی اون تاریکی یه دیگه که بزن و برگرد و بخارشان. کشش آرام و نرمی حس کرد و سپس کشش شدید تر شد. چرا که بیرون کشیدن سر ساردین از غلاب مشکل تر بود و بعد هیچ. پیرمرد بلند گفت یالا دیگه؟ یه دور دیگه بزن، فقط یه بو بکش، باشد نمیاد، همشونو بخور و بعدش برو سراغ ماهیتون، سرد و سفت و خوشمزه است، بجالت نکش ماهی، ده بخورشون. همچنان که نخ را با شست و سبابه گرفته بود و انتظار می کشید، نخهای دیگر را هم می چه ممکن بود ماهی بالاتر یا پایینتر شنا کند، و بعد دوباره همون کشش آرام و نرم بود پیرمرد بلند حرف میزد آ الان به غالاب گیر میکنه به امید خدا الان گیر میکنه اما گیر نیفتاد رفته بود و پیرمرد چیزی حس نمیکرد با خود گفت نباید رفته باشه به خدا نباید رفته باشه الان یه دور دیگه بر میگرده. آره؟ شدم قبلا گیر افتاده و یه چیزایی ازش یادش هست دوباره تماس نرم با نخ را حس کرد و شاد شد گفت: فرداش <تصفيق> فقط داشته دور میزد <تصفيق> الان قاب میگیره از احساس آن فشار ملایم خورسند بود که فشاری سخت و سهمگیین بر خود حس کرد این از وزن ماهی بود و پیرمرد نخ را گذاشت که از دستش بلغزد و در عمق آب پایین برود حالا یکی از دو گلوله تناب ذخیرش کاملا باز شده بود که در آب فرو می‌رفت و آرام از میان انگشتان پیرمرد می‌لغزید و فشار انگشتانش بر نخ تقریبا حس نمی‌شد اما هنوز وزن سنگین ماهی را حس می‌کرد با خود گفت عجب ماهیه، حالا غلاب تو دو طرف دهنش فرو رفته و میخواد خودشو از شرش خلاص کنه. و فکر کرد، بعدش هم یه دور میزنه و تموم غلاب رو میبره. اما این رو بلند نگفت، چون میدانست که اگر پیش اپیش از پیش آمد خوشی حرف بزند، برچگون است. و میدانست که ماهی چه عظمتی دارد، و مجسمش میکرد که در ظلمت آب و با ماهی تن که صلیبوار بر دهانش نشسته، تقلا می همان دم حس کرد که ماهی از تقلا بازی ایستاده است. اما سنگینیش همچنان وجود داشت. فشار نخ سنگینتر میشد و پیرمرد باز به نخ دادن ادامه داد. لحظه با شست و سبابهش نخ را فشرد و دید که وزن ماهی بیشتر شد و نخ مستقیم پایین رفت. پیرمرد گفت گرفتش، گرفتش، گرفتش حالا خوب همش رو بخوره. همچنان که نخ از میان انگشتانش میلغزید دست شپش را دراز کرد و انتهای آزاد دو گلوله نخ ذخیره را به دو گلوله زخیره قلاب دیگر گره زد. حالا آماده بود. غیر از گلوله نخی که در دست داشت، سه گلوله نخ هفتاد متری نیز ذخیره داشت. گفت بازم بخور، بازم بخور، بازم بخور، همش رو بخور. و فکر کرد همچین بخور که نوک غلاب توی قلبت بره و بکشدت. بعدش راحت بیا روی آبو و بزار رو توی تنت فرو کنم. بلخواه؟ ازری اره دیگه زیادی سر سفره نشستی بلند گفت، آه. آه. و با هر دو دست محکم نخها را تا سی سانتی بالا کشید و باز بالا و بالا و بالاتر کشید و با تمامی نیروی بازوانش و تمامی وزن بدنش به نوبت تنابها را تاب میداد و میکشید. هیچ اتفاقی نیفتاد ماهی آرام پیش میرفت و پیرمرد نمیتوانست ذره‌ای بالایش بکشاند تناب محکم بود و برای ماهی های سنگین ساخته شده بود پیرمرد آن را روی پشتش انداخته بود و چنان سخت کشیده میشد که دانه های آب از آن بیرون می‌پرید از تناب درون آب صدای فشفش آرامی شنیده شد و پیرمرد هنوز آن را گرفته بود و در مقابل کشش مقاومت میکرد و در جهت مخالف آن خم شده بود. قایق آرام به سوی شمال غربی راه کش کرد. ماهی یکسره پیش میرفت و آن دو خاموش بر آب آرام ره میسپردند سپردند. های دیگر هنوز درون آب بودند اما کاری برایشان نمانده بود پیرمرد بلند گفت. کاش پسرک اینجا پیشم بود. یه ماهی داره منو دنبال خودش میکشونه. و این منم که به به اون افتادم. اگه میخواستم تناب و محکم بکشم ماهی پارهش میکرده. و اونجا که میتونم نگهش دارم و به موقعش تناب بدم. خدا رو شک داره پیش میره و پایین نمیره. فکر کرد، نمیدونم، نمیدونم اگه بخواد پایین بره چیکار کنم، نمیدونم اگه پایین بره و بمیره کنم. کنم، اولو داخره یه کاری میکنم دیگه، خیلی کارا میتونم بکنم. تناب را پشتش نگه داشته بود و به شیبش در آب و به قایق که یک سره به سوی شمال غربی پیش میرفت، بینگریست. فکر کرد، همین کارش را میسازد. برای همیشه که نمیتواند به این کارش ادامه دهد اما چهار ساعت گذشته بود و ماهی هنوز یک سره بان سر دریا شنا میکرد و قایق را با خود میکشید و پیرمرد تناب را محکم بر دوش میکشید گفت: وقتی گیرم افتاد ظهر بود و هنوز ندیدمش پیش از گرفتن ماهی کلاه حسیریش را روی سرش محکم کرده بود و حالا لبه کلا پیشانهش را میبرید. تشنه بود و روی زانوانش بلند شد و همچنان که موازه بود دستش نلرزد تا جایی که میتوانست خودش را به جلوی قایق کشاند تا یک دستش به بطری آب رسید. بازش کرد و کمی نوشید و به دیواره غایق تکیه و نشست و به دکل و بادبان پایین کشیده تکیه و کشید تحمل کند و هیچ فکر نکند سپس به پشت سرش نگریست خشکی دیگر پیدا نبود فکر کرد خواهم نیست هر جا باشم بیتونم از روی چرقای هاوانا خودم به ساحل برسونم هنوز دو ساعت به غروب مونده و شاید تا پیش از غروب بیاد رو آب اگه نه شاید با درآمدن ماه بیاد رو آب و اگه نه شاید با درآمدن آفتاب بیاد رو آب من ایجام درد نمیکنه و با قوی و سرحالم این اونه که قلاب توی دهنش فرو رفته اما عجب ماهی و عجب زوری حتما دهنشو رو صفت بسته و نخو محکم توی دهنش نگه داشته نه کاش میتونستم ببینمش کش فقط یه بار می تا حریفم بشناسم. بشنسم. تا آنجا که پیرمرد از ستاره ها دست گیرش می ماهی تمام شب نه سرعت و نه جهتش را تغییر نداد. با غروب خورشید هوا سرد شده بود و دانه عرق بر پشت و بازوان و ساخهای پیرش سرد می شود. در طول روز، گونی را از روی جعبه طعممه ها برداشته بود و زیر آفتاب پهن کرده بود تا خشک شود. وقتی آفتاب غروب کرد گونی را چنان دور گردنش پیچید که پشتش را هم میپوشاند و به دقت آن را از زیر تنابی که از دور شانههایش گذاشته بود رد کرد. گونی از سایش نخ بر پشتش جلوگیری میکرد و پیرمرد راهی پیدا کرده بود که بتواند راحت تر به دیوار قایق تکیه دهد و با آنکه وضعیت تازه فقط کمی تحمل پذیر شده بود اما به نظر پیرمرد مرد نسبتاً راحت بود. فکر کرد تا موقعی که داره به این کار ادامه میده نه من میتونم بلای سرش بیارم نه اون میتونه بلای سر من بیاره. یک بار از جایش برخاست و از روی قایق شاشید و به ستاره ها نگاه کرد و مسیرش را بررسی کرد تناب همچون شعاع درخشانی راست از شانه هایش به درون آب فرو رفته بود اکنون حرکتشان کونتر بود و پرتوب های هاوانا انقاطفها درخشان نبود و پیرمرد فهمید که جریان آنها را به سوی مشرق میبرد با خود فکر کرد اگه دیگه های هاوانا رو نبینم؟ معلوم میشه جهتمون شرقی تر شده. اگر نه اگه ماهی همون مسیر رو گرفته بود، حالا حالاها باید چراغا رو میدیدم. آوه. فهمیدم نتیجه بیسبال امروز لیگای قوی چی از آب در اومد. اگه یه رادیو داشتم عالی میشد. و بعد فکر کرد. تو هم همش به فکر بیسبالی. فکر کارت باش. نباید اشتباهی ازت سر بزنه و بلند گفت کاش پسرک پیشم بود تا کمکم میکرد و این وضعو میدید. فکر کرد هیچ کس نباید تو پیری تنها بمونه ولی چاره نیست یادم باشه ماهیتون رو تا خراب نشده بخورم تا قوی بمونم. و باز با خودش فکر کرد. یادت باشه چه اشتها داشته باشی و چه نداشته باشی بد سو بخوریش یادت باشه در تمام طول شب دو فک گرد قایق میپلکیدند و پیرمرد صدای قلتیدن و نفس زدنشان را میشنید حتی میتوانست نفسهای فک نر را از آههای ماده تشخیص دهد گفت اونا خوبن، بازی میکنن و سر به سر هم میذارن و بازی میکنن، اونا مثل ماهی پرنده ها ما هستن و بعد دلش برای ماهی بزرگی که به قلاب انداخته بود، رحم آمد فکر کرد اون قریب و شگفتنگیزه و معلوم نیست چند سالشه تا حالا نه ماهی به این قدرت داشتم، نه هیچ ماهی رفتارش اینقدر عجیب بوده، شاید آقلتر از اونه که از آب بیرون بپره، میتونه با یه پرهش یا یه حمله شدید منو از بین بباره، ولی شاید قبل از اینم چند بار گرفتار شده و فهمیده که بعد اینجوری به جنگه، اون که نمیدونه حریفش فقط یه مرد تنهاست، اونم یه پیر مرد اما عجب ماهی بزرگیه اگه گوشتش خوب باشه چه قلقله توی بازر را میفته. تو من رو این یه مرد گرفت و قایقو مثل یه مرد میکشه و تو مبارزهش یک چیز حساب نشده نیست نمیدونم دونم داره از روی نقشه کار میکنه یا مثل من بی هدفه به یاد آورد که یک بار ماده یک جفت نیزه ماهی به قلابش افتاده بود. نیزه ماهی نر همیشه میگذارد که اول جفت مادهش غذا بخورد و ماهی گرفتار با تقلای بیسر و سامان وحشیانه وحشت زده نومیدانش زود خسته شده بود و در همه حال ماهی نر کنار مادهش مانده بود و همراه او گرد نخ و بر سطح آب دور زده بود. و چونان به قایق نزدیک شده بود که پیرمرد میترسید هر آن تناب را با دمش که به تیزی و قد قامت داس بود پاره کند در تمام مدتی که پیرمرد چنگک را در بدن ماهی ماده فرو کرده بود و یا چوب بر بدنش کوفته بود و لبه زیر تیغه شمشیروار دهانش را گرفته و آنقدر بر فرق سرش کوفته بود تا به رنگ جیوه پشت آینه درآمده بود و بعد به کمک پسرک بالایش کشیده بود، ماهی نر در کنار قایق مانده بود. بعد که پیرمرد داشت تنابهایش را جمع میکرد و قلاب را آماده می‌کرد، ماهی نر از کنار قایق بالا پریده بود و جایی را که مادهش بود دیده و بعد به اونقه دریا فرو رفته بود و بالهای عرقوانیش را که همان بالهای پشتیش بود، کاملاً باز کرده بود. تمامی شیارهای ارقبانیش را باز و گسترده به نمایش گذاشته بود. پیرمرد به خاطر آورد که ماهی زیبا بود و تا دم آخر مانده بود. فکر کرد این غمانگیسترین چیزی که حالا ازشون دیدم. پسرکم غصتش شده بود و ما از ماهی ماده معذرت خواستیم و وران شکمش پاره کردیم. بلند گفت کاش به سرک اینجا بود. و تکیش را به کنارهای سیغلی جلوی قایق داد و نیروی ماهی عظیم را از تنابی که از روی شانش گذشته بود و یک شره به سوی می رفت که ماهی انتخاب کرده بود، حس کرد. پیرمرد فکر کرد بالاخره لازم بود با حقوقی که بش زدم انتخابش رو بکنه. انتخاب اون توی عمق تیره دریا موندن و دور بودن از درنگی ها و دام ها و دروغ‌ها بود. انتخاب من پیش اون رفتن و اونو دور از همه مردم جستن و یافتن بود. دور از همه مردم دنیا. حالا ما به هم پیوستیم از زور تا به حاله. به هیچی از ما کمک نمیکنه فکر کرد شاید نباید ماهی گیر می شودم. اما من برای همین کار به دنیا آمدم ره یادم باشه حتما فردا صبح ماهی تونو بخورم